سلام بر همراهان همیشگی کانال هزار افسان در دهمین قسمت از داستان ملک جمشید هستیم و سرنوشت هنوز اون رو به راهای نامعلومی فرامیخونه و اون باز هم شجاعانه در مسیر حرکت میکنه. بریم بشنویم که در این قسمت چه ماجراهایی براش اتفاق میافته. در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که شاهزاده ملک جمشید به کمک دایه جهان آرای پری تونست به قصر جادو برگرده و اونو از بین ببره. اما بعد از مرگ اون خودش رو تنهای تنها در بیابان بی آب و علف دید که هیچ آب و آبادی نبود. خیلی ناراحت و غمگین شد و مدتی با خدا راز و نیاز کرد. اما آخر به خودش اومد و یه طرف بیابون رو در نظر گرفت و تا غروب آفتاب رفت تا اینکه به تپه رسید به هر سختی که بود از اون بالا رفت و در اون طرف تپه چشمش به چمنزاری افتاد که در گوشه ای از اون باقی با درختان سر به فلک کشیده قرار داشت به سمت اون باغ رفت و به در باغ رسید و دست بر در زد و در باز شد و شاهزاده وارد باغ شد و اینک ادامه ماجرا شاهزاده وارد باغ شد و خیابونی را درون دید که در دو طرفش جویهای آب زلال و گوارا جاری بودند صدای پرنده ها هم به هوا بلند بود و بوی عطر گل در همه باغ پیچیده بود اون شروع به حرکت در همون خیابان کرد تا شاید که باغبانی رو ببینه ولی هیچ کس رو ندید. کمی آب خورد و دست و شست. بعد هم شروع به گردش در باغ کرد تا بالاخره در قسمتی از باغ به قصر زیبایی در کنار استخری رسید. از پله‌های قصر بالا رفت و داخل قصر شد. دید که همه چیز برای یک میهمانی تمام و کمال حاضره. شیشه های شراب چیده شدند و از هر گونه خوراکی هم حاضره. بوی عطر و انبر هم از همه جا به مشام میرسه. شخصات با خودش گفت روزی تو همه جا پیش پیش میرسه و رفت و جامع شراغ و میقداری هم خوراکی برداشت و روی تختی که بر بالای تالار بود نشست و شروع به خوردن کرد. و خودش میگفت نمیدونم این باق مالکی و صاحبش کجاست که همه چیزو برای مهمونی حاضر کرده و خودش نیست. حالا بیاد حتما به غلاماش دستور میده که منو اونقدر بزنم که ندونم از کدوم راه برم ای ملک جمشید حالا شراب مردم رو میخوری یه ساعت دیگه هم کتکش رو نوشه جان خواهی کرد همینطور با خودش حرف میزد و میخندید که ناگهان صدای قوقایی شنید و با خودش گفت پاشو پاشو خودتو جمع کن و جایی پنهان شو که نبیننت. همین که خواست بلند شه در تالار باز شد و دختری وارد شد اونقدر زیبا که شاهزاده موت و متحیر منده بود. پشت سرش هم چهل دختر دلپری و زیبا وارد تالار قتل شدند. به محض وارد شدن به تالار دختر با صدای بلند فریاد زد دختران سری مجلس رو گرم کنید و بعد هم خودش اومد جلوی شاهزاده ایستاد و تعظیم کرد و گفت ای ملک شمچیت خوش اومدی هرکی به این خونه قدم بذاره قدم بر چشم ما گذاشته شاهزاده هم گفت ای ملک خوش یا ناخوش خدمت شما رسیدیم دختر در کنار شاهزاده نشست و رو به دخترها کرد و گفت چرا حیرون ایستادید مگه نمیدونید این جوان ملک جمشیده که مدت سه سال منتظرش هستیم حالا هم سری مجلس رو گرم کنید تا خستگی از تن این جوون در بیاد میهمانی شروع شد و شاهزاده هم جامهای شراب رو میخورد و سرش گرم شده بود و دختر هم اونقدر زیبا بود که هوش از سر شاهزاده رفته بود به اون ای ماه تابان بگویید که شما کی هستید اسمتون چیه به من خودتون رو معرفی کنید که نزدیک از زیبایی شما هلاک بشم دختر شروع کرد به خندیدن و گفت ای جوون حالا وقت این حرفا نیست اسممو میخواید چیکار بزار به درد خودم باشم چند قصر هم اشک ریخت دل شاهزاده چنان سوق که گفت ای نازنین گریه نکن راست بگو کیستی اسمت چیه چرا گریه میکنی برا من بگو وگرنه هلاک میشم بعد هم خودش مثل ابر بهار شروع به گریه کردن کرد دختر شاهزاده را در آغوش گرفت و عشق چشش و پاک کرد و گفت ای جان شیرین آروم باش و روی کن به وقتش منو میشناسی الان من نمیتونم خودم و معرفی کنم چون کشته میشم تو باید سه شب صبر کنی تا انشا الله پیش بیاد و راه نجاتی برامون پیدا بشه شاهزاده هرچه اصرار کرد که شاید دختر خودش رو معرفی کنه بیفایده بود القصه شام رو آوردند و خوردند و زمان خواب رسید. شاهزاده همچنان در کنار دختر بود تا وقت خواب شد. در این زمان دختر گفت ای جوان اگه طاقت داری در این اتاق بخواب. شاهزاده هم بلند شد شمشیر و لباسش رو در آورد و دراز کشید. اما همچنان حواسش به دختر بود تا اینکه دختر خوابش برد. شاهزاده هر چه کرد نتونست به خوابه. بلند شد جام شرابی خورد سر خودش رو گرم کرد. اما هر بار که چشمش به اون زیبارو رو که با آن حالت رؤیاگونه به خواب ناز رفته بود می تمام تنش به لرزه می و دلش از حال میرفت. هرچقدر هر چقدر خودش رو سرزنش میکرد که ای سگ نفس آرون باش باز چشمش که به اون زیبار میافتاد تاقتش طاقتش تاق و لرزه بر اندامش میافتاد. دختر همونطور که خواب بود شاهزاده براش شعر میخوند و با اون حرف میزد اما اون بیدار نمیشد شاهزاده با خودش گفت برای چی نشستی حالا که این زبارو در خوابه و طالع تو بیداره بلند شو و کام دل بگیر بنابراین ازمش رو جزم کرد و به سراغ دختر رفت که ناگهان دختر بیدار شد و گفت ای جوان این چه کاری بود که هم خودت و هم منو میخواستی به کشتن بدی مگه نشنیدی که گفتم در خانه ی دوست چون که محرم گشتی دست و دل و دیده را نگه باید داشت تو ساعت قبل نمک منو خوردی میخواستی نمکتون رو بشکنی؟ شاهزاده گفت جانم به قربانه، مگه چه خیانتی کردم؟ نمکتون که به جای خودش هنوز نمیخواستم که تو رو بکشم. در نهایت دوستی میخواستم کام دلی ازت بگیرم. اونم تقصیر از من نیست. هرکی تو رو با این حسن و جمال در خلوت ببینه نمیتونه ازت دست برداره. دختر خندید و گفه جمون درسته. چرا که این باغ و این مکان سرزمینیه که ایمان فلک رو به باد میده. اگه تو به کام رسیده بودی دیگه منو نمیدیدی. منم تو رو نمیدیدم و تا قیام قیامت سرگردون میموندی. شخصات گفه این نازنین این حرفها افسان است و به گوش من نمیره اینکه میگی تو رو نخواهم دید و کشته میشم اصلا کسی که بتونه منو بکشه هنوز به دنیا نیومده. این حرفها رو بزار کنار و بدون که تا از تو کام نگیرم دست بر نمیدارم. دختر گفت مگه سر شب با من قرار داد نزاشتی که صبر کنی و طاقت بیاری و سه شبانه روز صبر کنی چرا حالا میخوای خلافه وعده کنی من موکل دارم اون نمیذاره تو به من دست بزنی شاهزاده گفت درسته ولی اکنون من دیگه تاب ندارم دختر گفت پشیمون میشی امشب و فردا شب و تحمل کن وگرنه یا کشته میشی یا تا روز قیامت در بیابان و تلسم آصف میمونی شاهزاده گفت یه ساعتم نمیتونم طاقت بیارم القصه هرچه دختر اصرار کرد و گریه زاری کرد بیفایده بود بنابراین شاهزاده به سمت دختر رفت و تا خواست به اون دست بزنه که ناگهان از پشت سر و صدای نعره وحشتناکی رو شنید که میگفت این نمک به حرام نادرست چه میکنی دست نگهدار؟ و تا شاهزاده خواست به خودش بجنبه و ببینه این صدا از کجا ویه و وو صاحبش کیه چنان سیلی محکمی بر صورتش خورد که نقش بر زمین شد و بیهوش افتاد وقتی هم که بهوش اومد دید در میان جنگلی افتاده اطرافشو نگاه کرد دید نه باغیه نه قصریه نه دختریه و غیر از درخت و جنگل چیزی ندید آه از نهادش در اومد و کمی فکر کرد و به یاد تفاقات شب گذشته و افتاد و از خودش حسابی اصابانی شد و گفت ای ملک جمشید تقصیر خودت بود آخه این چه کاری بود که کردی؟ مگه دختر بهت هشدار نداده بود؟ مگه ازت نخواسته بود که طاقت بیاری که تو اینطور بی کردی؟ ای خاک بر سرت که عجب آشقی هستی؟ بعد از این چطور میخوای به یارد ماه آلمگیر نگاه کنی؟ و زار زار به حال خودش گریه کرد و مدام خودش رو سرزنش میکرد که یه هایی صدای وحشتناکی شنید که ای جوون سفید چشم خیر سر چطور به اینجا اومدی؟ الان مادرت رو به ازات مینشونم. شاهزاده از این صدا از جاش پرید و اطرافش نگاه کرد و دید که از وسط درختان جنگلی یک سیاه زنگی قوی هیکل آشکار شد و که دو چشمانش مثل کاسه خون بود. چوب دستی بزرگی هم در دست داشت. نعر زنان رسید و گفه ای آدم سفید چطور جا کردی به اینجا بیای بعد هم چوب دستش رو دور سرش چرخوند و به طرف شاهزاده حمله کرد. شاهزاده خالی داد و سپرش رو جلوی خودش گرفت و با شمشیرش بر کمر سیاه زنگی زد. اون به خاک افتاد اما از بدن بی جان سیاه زنگی دو سیاه زنگی چوب دستی دیگه در اومد و باز به سوی شاهزاده حمله کردند. شاهزاده اونها رو هم کشت اما هر کدوم از اونها دوباره دو سیاه زنگی دیگه شدن. القصه تا ظهر این داستان ادامه داشت و شاهزاده حسابی در مونده شده بود و با خودش میگفت سبحان الله این چه است من یه نفر رو میکشم اون دو نفر میشه. یه نفر سیاه زنگی بود الان شدن هزار نفر. هرچه بیشتر از بینشون میبرم زیادتر میشن. بنابراین دید به غیر از فرا کردن راه دیگه ای نداره بنابراین همونطور که از خودش دفاع میکرد فرار هم میکرد اونا هم به دنبالش می اومدن که یه ها ایداد داد بیداد به دریا رسیده و یا باید داخل دریا میرم یا هم باید به دست زنگیها ها کشته میشد با خودش گفت هم دریا بهتره میپرم توی دریا هرچی پیش اومد و گفت خدا خودم و به هد سپردند و خودش رو توی دریا انداخت شروع کرد به شنا کردن و چون سرش از آب بیرون آورد نگاه کرد و دید زنگی ها نیستند ولی از هر طرف امواج دریا به روش می‌ری شاهزاده هم دست و پا زنان گاهی زیر آب می رفت و گاهی روی آب تا اینکه که خسته شد و دست و پاش از کار افتاد. نزدیک بود که جونش در بیاد باز به یاد خدا افتاد و گفت پروردگار و منو در نظر نزار اینطور حلاک بشم به هم رحم کن من جوونم هزار تا آرزو دارم. همه جا من نگه داشتی اینجا هم نجات هم بده به داد هم و همینطور یارب یارب میکرد که ناگهان دید آب دریا شکافته شد و نهنگ بزرگی سر از آب در آورد. دهان خودش را هم باز کرد و به اون حمله کرد. شاخزاده از دیدن نهنگ مطمئن شد که مرگش حتمیه. با خودش گفت ای ملک جمشید تا کی میخوای تو این دنیا به بلا گرفتار باشی بیا و خودت رو در جهان این نهنگ بنداز و از این دنیا راحت شو بنابراین خودش رو جمع کرد و در جهان نهنگ انداخت و در شکم نهنگ فرو رفت و بیهوش شد اما وقتی به هوش اومد و خودش رو دید که در یک بیابان بی آب و علفه که نه یک یاه سبز در اون بود و نه یک قطره آب. با خودش گفت سبحان الله آسیبهایی به من میرسه که اگه به کوه برسه خاکستر میشه. یه ساعت قبل در میان زنگی ها گرفتار بودم بعد در میان دریا گرفتار شدم و خودم رو به دهان نهنگ انداختم. حالا هم باز اینجا هم زمانی گریه کرد اما کم کم به خودش اومد و گفت بهتره باز بلند بشم و سر به بیابون بذارم تا ببینم سرنوشت منو به کجا میرسونه. بنابراین باز هم یک طرف بیابان رو در نظر آورد و شروع کرد برفتم تا غروب آفتاب راه رفت. از تشنگی و خستگی جونش به لب رسیده بود که چشمش دوباره به باقی افتاد. جلو که رفت دید همون باغ دیشبیه. خیلی خوشحال شد. دوباره وارد واق شد و دو کنیز از جلوش در اومندند و بهش تعظیم کردند و گفتند ملکه ی آفاق میگن جای تو در قصر کنار من خالیه. بیا که چشم براه تم. شاهزاده از شدت خوشحالی نمیدونست چکار کار کنه. بنابراین دوباره وارد همون قصر دیشبی شد و هرچه دیشب به سرش اومده بود رو هم کلن از یاد برد. در برابر همون دختر دیشبی ایستاد و تعظیم کرد و گفت ای نازنین سلام بر تو دختر زیر لب جوابی داد اما دیگه شاهزاده رو تحویل نگرفت شاهزاده آتیش به جونش افتاد و اشکش جاری شد و گفت فداتون بشم چرا از من دوری میکنین چه خلافی کردم که به هم نگاهم نمیکنید دختر با خشم گفت ای بی ادب خودت که بهتر میدونی نزدیک بود دیشب هم خودتو هم منو به کشتن بدی. شخصات گفت پشیمانم توبه میکنم از کارم این بار منو ببخش که دیگه چنین کاری نمیکنم. دختر که این حرف ها رو شنید و زاری اونو دید دلش به رحم اومد و خندید و به اون گفت ای جوان من گرفتار تو هستم مدتی هم چشم به راه تو بودم تا حالا شاید که وسیلی ساخته بشه و از این بند بلا نجات پیدا کنم حالا تو اگه به حرف من گوش بدی و امشب و فردا شب رو هم به من مهلت بدی کارا درست میشن شاهزاده گفت خاطر جمع باش که هرچه بگی اطاعت میکنم دختر خوشحال شد و به کنیزها دستور داد که دوباره مهمونی رو گرم کنند و هنگامی که سرشون از باده گرم شد شاهزاده داستانش رو تعریف کرد که در این 24 ساعت چه بر سرش اومده و چطور به همین قصد رسیده دخترم گفت اگه دیشب به حرفم گوش کرده بودی این بلاها به سرت نمیومد. حالا شکر خدا که دوباره خدا تو رو به حوالی این باغ آورده اگه خودتون نگه داری و این دو شب از من دوری کنی آسوده خواهی شد شاهزاده گفت دیگه دست رازی نمی کنم و هر دو با هم عهد بستن بعد هم دوباره دختر به کنیزها دستور داد، سفره انداختند و شام خوردند و دختر آماده خواب شد و به شاهزاده گفت ای جوون من می بخوابم ولی ازت می ترسم که باز من و خودت رو به بلا گرفتار کنی شاهزاده گفت بخواب و خاطر جمع باش دختر خوابید و شاهزاده هم کنار دختر بود تا زمانی که دختر به خواب ناز رفت. شاهزاده دوباره وسوسه شد آنچنان که باز اختیار از دستش در رب. هر کاری میکرد نمیتونست به خودش مسلط باشه و تمام اتفاقاتی رو هم که بر سر اون نافرمانی براش افتاده بود از یادش برد باز جام شرابی نوشید و به بالای سر دختر رفت و میگفت آخه چطور کنارت باشم و طاقت بیارم و خودم رو نگه دارم بلند شو و ببین که چطور میسوزم. اینبار این بار هم هرچه گریه و زاری کرد دختر بیدار نشد اقبت دست به سر و صورت و اندامش کشید و ناگران عقل به اون هی که میخوایی چیکار کنی مگه یادت رفته چه بلاهایی به سرت اومد که هزار مرتبه مرگ از خدا میخواستی حالا که نجات پیدا کردی حیا کنی میخوایی عهدت و بشکنی و همینطور خودشو و ملامت و سرزنش میکرد بازم نمی نمیشد از اون طرف وسوسه های شیطانی در گوشش زمزمه می کرد که ای بیعقل چطور می از این دل بر بگذری؟ شاید فردا افتادی و مردی و حسرت به دل موندی. از کجا مطمئنی که زنده بمونی و تلسم رو بشکنی که از این دختر می پوشی؟ پاش و فرصتو از دست نده که آدم عاقل در چنین وقتی از چنین دختری نمیگذره؟ القصه اختیار از دستش در اومد و به سمت دختر اومد ولی درست در همین لحظه دوباره دختر بیدار شد و متوجه یه قصد شاهزاده شد شروع کرد به التماس که نکن این کار رو که پشیمون میشی من موکل دارم اون نمیذاره دستت به من برسه اگر مردی منو در برابر موکلم شرمنده نکنه از من دست بردار امشب و فردا شب رو صبوری کن بعد هرچه چه خواستی انجام بده ولی بیفایده بود، شاهزاده دست برد که دختر رو در آغوش بگیره، باز همون صدای وحشتناک بلند شد که ای ناپاک چشم سفی، این همه بلا به سرد اومد کافی نبود، باز نمک به حرومی میکنی؟ تا شاهزاده خواست شمشیرش رو بکشه، دوباره چنان سیلی محکمی خورد که آتیش از چشمش پرید و نقش بر زمین شد و بیهوش، و وقتی به حشومت باز خودش رو میان بیابانی دید. سرش درد میکرد و بلند شد و نگاهی به اصراف کرد و خودش رو در بیابان بی و علفی دید. حسابی خودش رو سرزنش کرد که چقدر ضعیف و اراده شدی نمیتونی تونی خودتو نگه داری؟ با اینکه تمام عمر در حیا و افت زندگی کردی خودش هم نمی دونست که چی شده و نمی تونه در برابر این دختر خودش رو حفظ کنه. چندین بار بر سر و روی خودش کوبید ولی بعدش گفت این زاری که فایده نداره پاشو پاشو سر به بیاوون بذار ببین سرنوشت چه چیزی برای تو آماده کرده از جاش بلند شد و رو به آسمون کرد و گفت پروردگارا تو دانایی و میدونی که من عاشق ماه عالم گیرم و غیر از او با کسی دیگه ای شوقی ندارم ولی نمی چطور میشه که در برابر این دختر این حرکات بیمعنی از من سر می زنه. خودت به هم رحم کن. من توبه می کنم و خودم و به تو می سپارم. بعد هم دوباره سمتی از بیابان رو در نظر گرفت و شروع به رفتن کرد. تا نزدیکی های زهر که دوباره به بالای تپیل رسید. اون طرف تپه شهر بزرگی رو دید و خدا رو شد کرد. داخل شهر شد و دید انگار شهر به هم ریخته است. تعداد زیادی آدم از کوچیک و بزرگ و سیاه و سفید در میدون شهر جمع هستند و شخصی بالا مقام که به وزیرها شباحت داشت در وسط جمعیت ایستاده. شاهزاده با خودش گفت خدا یا اینجا دیگه چه خبره؟ در همین فکرها بود که صدای جارشی بلند شد که ای مردم همه ساکت باشید و به صحبتهای وزیر گوش بدیم وزیر هم گفت ای مردم چون پادشاه این شهر از دنیا رفته و فرزندی هم نداره که جانشینش بشه این باز رو که به دست منه به هوا پرواز میدیم تا بر سر هر کسی نشست اون پادشاه شهر بشه مردم که این حرف رو شنیدن همه سرای خودشون رو برهنه کردند و به آسمان نگاه کردند تا شاید باز بر سر اونها بشینه. وزیر هم بعد از اون باز رو به هوا پرتاب کرد. باز هم شروع به چرخیدن بر بالای سر مردم کرد و اومد و بر سر ملک جمشید نشست. همه نگاه کردن دیدن شاهزاده عجب جوان است به او تعظیم کردند و گفتند اوندیه دولت پادشاه تازه زیاد باشه شاهزاده پرسی چی خبره اینجا وزیر هم گفت پادشاه این شهر مرده باز رو به پرواز در آوردیم و بر سر شما نشسته حالا شما پادشاه ما هستید شاهزاده گفت پس اسب رو حاضر کنید اسب رو آوردند و شاهزاده بر اسب سوار شد و به قصر پادشاهی رفت مردم هم در میانه راه شادی می کردند و از پادشاه جوانشون راضی بودند. القصه شب شد و شاهزاده برای استراحت به حرم سرا رفت. در آنجا چشمش به دختری افتاد بسیار زیبا که تاکنون ندیده بود. دست و پاش باز به لرزه افتاد و با خودش گفت سبحان الله دیگه نمیدونم این دختر کیه که باز منو به این حال انداد. خاجه باشی جلو اومد و گفت ایشون دختر پادشاه هستند که اصمون از دنیا رفته و ایشان عزادار هستند شاهزاده باز هرچه خودداری کرد نتونست و از خاجه پرسید آیا شوهر داره خاجه گفت خیر شاهزاده جلو رفت و دست دختر رو گرفت و همراه او بر بالای تخت نشست بعد از اون دختر رو به کنیزها کرد و گفت مگه نمی‌دونید این جوان امروز پادشاه این شهر شده؟ به شکرانه این نعمت مجلس رو گرم کنید. کنیز مجلس رو گرم کردند و جام یه شراب رو آوردند. ساقی جام شرابی به دختر داد و دختر هم رو به شاهزاده کرد و گفت ای جوان این جام رو از من بگیر و نوشه جام کن که نزدیک از اشقت هلاک بشد. شازاده هم جام رو گرفت و نزدیک لبش بود. خواست که بنوشه، اما حاطفی از غیب ندا داد ای ملک جمشید این شراب رو نخور و با خنجر دختری رو که در کنارت نشسته بکش. که اگر یک قصر از این شراب بخوری تا قیامت در تلسم خواهی ماند. شاهزاده که این صدا رو شنید لب از جام برداشت و با خودش گفت این چه صدا بود و از کجا به گوشم رسید؟ نگاهی به دختر کرد و با خود گفت من چطور چنین زیبا رو بکشم؟ دختر پرسید ای پادشا چی شد چرا شراب و نخوردی؟ شاهزاده گفت خواستم بخورم ولی صدایی شنیدم که گفت این شراب رو نخور دختر خندید و جام رو از دست شاهزاده گرفت و خودش اونو سر کشید و دوباره به دست خودش جام رو پر کرد و به دست شاهزاده داد و گفت دردت بجونم بگیر و بخور گوش به صدا نده که من دشمن زیاد دارم و از راه دشمنی این حرفا رو به گوش تو میرسوند شاهزاده برای بار دوم خواست که شراب رو بنوشه اما این بار هم صدایی شنید که می ای جوان خید سر نخور این شراب رو بکش این دختر رو که در تلسم خواهی موند باز شاهزاده لب از جام شراب برداشت و به دختر نگاه کرد و گفت خدایا چطور چنین زیبارویی رو بکشم نمیدونم این صدا از کجا به گوشم می رسه. صاحبش کیه باز دختر پرسید چرا نمی شاهزاده گفت باز همون صدا رو شنیدم. دختر این بار هم خندید و گفت من به تو گفتم. زنان حرم با من حسودی می و این حرفا رو میزنن که تو از من دست برداری و با اونا باشی. ولی این منم که آشق تو هستم. چند جام با من بخور و کام از من بگید. بعد با هر کدوم از این زنای که خاصی به سر ببر و حالا به این حرفا گوش نده و بعد هم دست و پای شاهزاده رو بوسید. شاهزاده گفت ای نازنین من از تو دست بر نمیدارم و لبش رو دوباره به جام نزدیک کرد و خواست که شراب رو بخوره برای باور سوم اون صدا بلند شد گفت که ای جوون تا کی چشم سویدی میکنی بهت میگم این شراب رو نخور این دختر رو بکش اگر یک قطره از این شراب رو بخوری تا قیامت در تلزم میمونی شاهزاده این بار دیگه جام رو بر زمین کوبید و ناقافل خنجرش رو درورد و بر سینه دختر فرو کرد. دختر فریادی زد و به زمین افتاد و ناگهان رعد و برق و طوفانی به پا خاست چنان که همه جا تیره و تار شد. شاهزاده چشاش رو به هم گذاشت و بعد از چند لحظه که چشاش رو باز کرد خودش رو باز در بیابان دید و گفت سبحان الله این بیابان دست داز سر من بر نمیدارهم و نمیدونم که چقدر باید در این بیابانها سرگردان باشم بعد هم از جاش بلند شد و شروع به راه رفکن کرد و دوباره به تپه تپهای رسید و از اون بالا رفت اون طرف تپه همون باغ دیشبپریشبی رو دید و خوشحال شد دوباره به باغ رفت و ولی با خودش میگفت از خجالت دختر چه کنم که این همه به من التماس کرد و آخر حرفشو قبول نکردم حالا حتما باز منو سرزنش میکنه در این لحظه دوباره دو کنیز از جلوش درآمدند دو گفتند ملکه آفاق منتظرتونه شاهزاده هم دوباره وارد قصد شد و دختر رو بر بالای تخت دید تعظیم کرد و در برابرش ایستاد اما دختر باز به اون بی‌توجهی کرد شاهزاده ساعتی همونجا موند و دید که اصلا دختر بهش توجه نمیکنه برای همین گفت قربونتون بشم خجالت خودم کافیه چرا به من توجه نمیکنین؟ دختر رو به ملک چمشید کرد و گفت ای جوون تو بد عهد و بدقول هستی چطور بهت توجه کنم؟ نه به فکر جون خودتی نه به فکر جون من. امشب در گوشه ای از این قصر بمون تا فردا صبح ببینم چی میشه. دیگه من تو رو پیش خودم راه نمیدم که تو بسیار بدقولی. القصه شاهزاده عذرخواهی کرد و قول داد که بدعهدی نکنه و داستان و اتفاقات اون روز رو هم برای دختر تعریف کرد. دخترم گفت دیدی حرفای من گوش نکردی چه بلاها سرد اومد حالا نمیدونم ادب شدی یا نه؟ شاهزاده گفت خاطر جمع باش که ادب شدم و دیگه نافرمانی نمی کنم. دختر گفت فقط یک امشب که شب سومه اگر به سلامت بگذرونی کار تمومه. اما دیگه چون از تو خاطر جمع نیستم امشب اصلا نمیخوابم و تا صبح بیدار میمونم. شاهزاده شاخزاده گفت این نازنین بی و خاطر جمع باش من باهات کاری ندارم. دختر قبول نکرد و گفت دو شب گذشته هم قسم خوردی که به من دست نزنی و منو خاطر جمع کردی ولی هم نشد. از من دست بر نداشتی تا موکل من به تو سیلی زد و اون همه بلا به سرت اومد. حالا چون امشب شب آخر اگه من بخواوم و خدایی نکرده باز وسوسه بشی و بخوای به من دسترسی کنی عوض سیلی با شمشیر روبرو خواهی شد پس بهتره که من بیدار باشم و هرچه هم که شاهزاده اصرار کرد بیفایده بود این بود که دختر تا صبح بیدار موند و سر شاهزاده رو با حرف زدن گرم کرد و اون شب به خیر گذرد و اما روز دیگه باز اتفاقهای دیگه ای افتاد و داستان به ماجراهای بیشتری کشیده شد. برای دونستن اونها تا هفته آینده صبر کنید تا در قسمت بعدی براتون روایت کنید. پس در پناه نور و عشق الهی باشید.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 همه و همه و همه در کاناد تگرامی هزار افسان داستان‌های های افسانهای صوتی سانین مهران دوستی،